کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عظیمه علی گلزاده داستان شش بود یکی بود، یکی نبود. روزی پادشاهی برای شکار به یک جنگل بزرگ رفت به او اونقدر سریع به این طرف و اون طرف می رفت که هیچ کدوم از درباریان نمی تونستن اونو دنبال کنند. نسی که قروب آفتاب پادشاه هست به قصد برگرده نگاهی به اطرافش کرد و فهمید که گم شد. به همین دلیل دنبال راهی برای خارج شدن از جنگل می گشت. اما موفق نشد. بعد متوجه شد که یه پیرزن در حالی که سرش رو تکون میده به طرفش میاد. او یه جادوگر بود. پادشاه به پیرزن گفت خانوم مهربون شما میتونین راه خروج از جنگلا به من نشون بدین؟ پیرزن جواب داد بله البته جناب پادشاه، من میتونم به شما کمک کنم اما به یه شرط. و اگه قبول نکنید، هرگز نمیتونین از اینجا بیرون برین و از برستگی میمیرین. پادشاه پرسید چه شرطی پیرزن گفت من یه دختر دارم او اونقدر زیبایی که در تمام دنیا بینظیره برای همسری کاملا مناسبه اگه دخترم ملکه کشورت کنید منم راه بیرون رفتن جنگل رو بهت نشون میدم پادشاه خیلی ناراحت شد اما قبول کرد پیرزن او را به خونهش برد دختر در خونه کنار آتیش نشسته بود همونطور که پادشاه انتظار داشت دختر خیلی زیبا بود، اما پادشاه اصلا از اون خوشش نیومد. وقتی به صورت دختر نگاه میکرد، نمیتونست جلوی ترس و وحشتش رو بگیره. به محض اینکه او دختر جوان رو سوار ازفش کرد، پیرزن راه را نشونش داد. پادشاه هم به قصرش رفت و در اونجا جشن ازدواج خودش رو برگزار کرد. پادشاه قبلا یه بار ازدواج کرده بود و از همسر اولش هفت فرزند داشت. شش پسر و یه دختر و اونها رو بیشتر از هر کسی تو دنیا دوست داشت. اما حالا چون می‌ترسید که نامادری رفتار خوبی با اونها نداشته باشه و اذیتشون کنه، بچه‌هاشو به قلعه‌ای در وسط جنگل برد. این قلعه در میان درختان مخفی شده بود و هیچکس کس به راحتی به اونجا بره. حتی خود پادشاه هم اگر قرقره جادوییشو نداشت، نمیتونست اونجا رو پیدا کنه. این قلعه رو یه زن دانا بهش داده بود و خاصیت عجیبی داشت وقتی اون رو جلوی پاش رو زمین مینداخت نخ اون خود به خود باز میشد و راه را نشون میداد. اما پادشاه زیاد به دیدن بچه‌اش نمی رفت چون ملکه از نبودن او عصبانی میشد کم کم او به فکر افتاد بفهمه که پادشاه به تنهایی در جنگل چه کار می کنه. به همین خاطر پول زیادی به خدمتکارا داد اونها هم راز قلعه رو بهش گفتن. حتی روش استفاده از قرقره غیر را هم پیش یاد دادند. ملکه به جنب جوش افتاد و بالاخره تونست جای قرقره غیر رو پیدا کنه. او دست به کار شد و چند لباس سفید دوخت. بعد همونطور که از مادر جادوگرش یاد گرفته بود همه اونها را تلسم کرد. یه روز که پادشاه از قصر بیرون رفته بود او لباسها را برداشت و به طرف جنگل رفت قلقره هم راه را پیش نشون داد بچه ها که دیدن یه کسی به طرف قلعه میاد فکر کردن پدرشونه که به دیدنشون اومده با خوشحالی بیرون اومدن ولی که به هر کدوم از اونها یکی از لباسار پوشوند و همه اونها یکی یک تبدیل به غو شدن و پرواز از اونجا رفتند که با خوشحالی به خونه برگشت چون فکر میکرد از دست بچه های شوهرش راحت شده اما دختر پادشاه همراه برادراش بیرون نیومده بود و ملکه هم چیزی درباره اون نمیدونست. روز بعد پادشاه به دیدن بچه هاش رفت اما کسی رو به جز دخترش پیدا نکرد پرسید؟ برادرات کجا هستن؟ دختر جواب داد آه پدرجان همه اونها رفتن و منو تنها گذاشتن. بعد تعریف کرد که از پنجره دیده که برادراش به شکل در اومدن و پرواز کردند او پرایی را که جلوی خونه جمع کرده بود و به پدرش نشون داد پادشاه خیلی غمگین شد اما فکر نمیکرد همه این کارا زیر سر ملکه باشه چون می ترسید که دخترش هم از دست بده او میخواست دختر رو با خودش ببره که دختره از نامادریش میترسید به پدرش اصرار کرد اجازه بده یه شب دیگه, دیگه در قلعه بمونم دختر بینوا با خودش گفت اینجا دیگه جای من نیست باید برم و برادرامو پیدا کنم وقتی شب فرار رسید او در جنگل به راه افتاد تمام اون شب و روز بعد رو دوید تا اینکه از شدت خستگی دیگه نتونست جلوتر بره بعد کلبه کوچکی را دید وارد اون شد در اونجا شش تخت خواب کوچک پیدا کرد ترسید رو اونها بخوابه به همین دلیل به زیر یکی از تختا رفت و تا تمام شب رو روی زمین سرد دراز بکشه وقتی خورشید غروب کرد صدایی به گوشش رسید دید شش قوه از پنجره وارد شدن. اونها روی زمین استادن. به همدیگه فوت کردند. همه پراشون ریخ. پوستگومسی یه لباس از تنشون بیرون اومد. دختر فوراً برادراشو شناخت و با خوشحالی از زیر تخت بیرون اومد. برادرا هم از دیدن خواهر کوچیک خودشون خیلی خوشحال شدند. اما شادی اونها زیاد طول نکشید. اونها بهش گفتن تو نمیتونی اینجا بمونی اینجا مخفیگاه دوستست اگر اونها بیا تو رو ببیند، زندت نمیذارن. خواهر کوچیک پرسید: شما نمیتونی از هم مواضبت کنید اونها جواب دادن نه چون ما فقط میتونیم بعد از ظهرها برای یه مدت کوتاه پوستغرور رو از تنمون در بیاریم. در این مدت به شکل آدمیزاد در میآیم اما کمی بعد دوباره تبدیل به بگو میشین. خواهر کوچولو شروع به گریه کرد و گفت یعنی چی؟ یعنی هیچ راه نجاتی نیست؟ برادرها گفتن نه شرط خیلی سختی داره. باید شش سال تمام نه حرف بزنی نه بخندی. در این مدت شش لباس با گلای ستارهی بدوزی. اگه یک کلمه از دهانت خارج بشه همه زحمتات به هدر میره. بعد گفتن این حرفها مهلت اونها به پایان رسید و بعد به شکل خوه از پنجره پرواز کردند. اما دختر جوان تصمیم گرفته بود که برادراشو نجات بده حتی که در این راه زندگیشم از دست میداد او از کلبه خارج شد و به جنگل رفت از یه درخت بالا رفت و شب را همونجا موند صبح روز بعد در جنگل به راه افتاد و گلهای ستارهای جمع کرد و شروع به دوختن کرد او کسی رو نداشت که با او حرف بزنه. حوصله خندیدن هم نداشت. به خاطر همین همونجا نشست و فقط به کارش فکر میکرد. مدتی از زندگی او در اونجا گذشت. یه روز پادشاهی در جنگل مشغول شکار بود. همراهان او به طرف درختی که دختر روش نشسته بود اومدند و گفتند تو کی هستی؟ دختر هیچ جوابی نداد. اونا گفتند بیا پایین ما نمیخوایم تو رو عذیت کنیم. اما دختر فقط سرش رو تکن داد. اونها بازم به سال کردن ادامه دادن. دختر زنجیر طلایی خودش رو از گردنش باز کرد و پایین انداخت. اما دست دستبردار نبودن. او کمربندش هم براشون انداخت و چون فایده ای نداشت ساخبنده ها و بعد پیراهنش رو هم به اونها داد. درباریان آن به جای اینکه از اونجا برند از درخت بالا رفتند و دختر رو پایین آوردند و پیش پادشاه بردند. پادشاه پرسید تو کی هستی؟ روی اون درخت چی کار میکردی؟ اما دختر جوابی نداد. پادشاه به هر زبانی که بلد بود سوالش رو تکرار کرد. اما دختر مثل یک ماهی ساکت بود. او دختر بسیار زیبایی بود. پادشاه به او علاقه مند شد و شنیل خود رو دور بدن دختر پیچید. اون روی به خود نشوند و به اش برد. در اونجا لباس گران قیمتی هم به او داد که زیبایی دختر رو چند برابر میکرد. اما حتی یک کلمه حرف نمیزد. پادشا کنارش نشست و با هم غذا خوردن. او از رفتار خوب و حرکات دختر خیلی خوشش اومد. گفت من فقط با این دختر ازدواج میکنم نه هیچ کسی دیگه. چند روز بعد اونا با هم ازدواج کردند. اما پادشاه مادر بدجنسی داشت که از این ازدواج خوشحال نبود حرفای بدی هم درباره ملکه جوان میزد او می گفت چه کسی میدونه که این دختر کیه؟ اون نمی تونه حرف بزن و به درد یه پادشاه نمیخوره بعد از یه سال وقتی اولین بچه ملکه به دنیا اومد مادر شوهرش بچه را اون گرفت پیش پادشاه رفت و گفت ملکه بچه را کشته پادشاه باور نکرد. و اجازه نداد کسی اونو اذیت کنه ملک ساکت آروم به دوختن ستاره ستارهای ادامه داد و خواسته چیزی را نمیخورد مدتی بعد او صاحب فرزند دیگری شد و مادر بدجنس پادشاه همون کار را تکرار کرد اما پادشاه بازم حرف پیرزن را باور نکرد او گفت او مهربونتر و خوبتر از اونیه که دست به چنین کاری بزنه اگر او لال نبود و میتونست از خودش دفاع کنه حتما بیگناهیشو ثابت میکرد اما وقتی بچه هم ناپدید شد و ملکه متهم نتونست از خودش دفاع کنه پادشا مجبور شد طبق قانون رفتار کنه و حکم دادگاه این بود که او باید سوزنده بشه روزی که قرار بود حکم اجرا بشه آخرین روز از شش سالی بود که او نباید حرف میزد و میخندید حالا دیگه او میتونست برادراش رو از ترسم جادوگر نجات بده شش لباس آماده بود فقط آسین چپ لباس آخری هنوز کامل نشده بود وقتی او را به طرف تیرک می بردن لباس لباسها در دستش بود ملکه را به تیر چوبی بستند و می‌خواستن آتش را رو روشن کنند ملکه به اطرافش نگاه کرد شش غور رو در آسمان دید او فهمید که نجات پیدا کرده قلبش سرشار از شادی شد اوها دور او, او چرخیدند و او قدر پایین اومدن، تو دونست لباس رو به طرفشون پرت کنه. وقتی قوها اونها رو گرفتند پست غو ناپدید شد و برادران ملکه با چهره های شاد و خندون جلوش ایستادن فقط جوانترین برادر به جای دست چپش یه بال قو داشت اونها از شادی یکدیگر دیگر رو در آغوش گرفتن ملکه هم به طرف پادشاه که شگفت زده شده بود رفت و شروع به صحبت کرد او گفت همسر عزیزم حالا میتونم حرف بزنم و به تو بگم که من بی بیگناهم و به ناحق متهم شدم. ملکه توضیح داد که چطور مادر پادشاه اونها رو فریب داد و بچه هاشو پنهان کرد بعد همه با خوشحالی جشن گرفتند مادر بدجنس هم اقبت خوشی نداشت پادشاه ملکه و شش برادرش سالیان سال با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند